کتاب مجموعه افسانه های ایرانی، نوشته زهرا مهاجری ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسانه صوتی، به مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده سهیلا بوستانی. سلام به شنوندگان داستانهای افسانه صوتی از سری داستانهای مجموعه افسانه‌های ایرانی با داستانی در خدمتتون هستم به نام پاداش نیکوکاری امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت ببرید زمانهای قدیم تاجری بود که یه پسر داشت یه روز پسر تاجر که یه جوون رشید و برازنده شده بود به پدرش گفت چرا به فکر دوماد کردن من نیستین؟ تاجر گفت هنوز وقتش نشده من صد تومان بهت میدم هر وقت تونستین صد تومانو به دیویست تومن برسونی اون وقت دومادت میکنم پسر قبول کرد پولو از پدرش گرفت و از خونه زد بیرون رفت و رفت و رفت تا به یه قبرستون رسید و دید که مرده ای رو میخوان دفن کنن. ولی یه مردی اون وسط بود که مانع میشد و میگفت که 100 تومن منو بدید تا بذارم مرده رو خاک کنید. پسر وقتی این صحنه رو دید جلو رفت و پرسید چی شده جریان چیه؟ بچه های شخص مرده گفتن این مرد 100 تومن از پدر ما طلب داشته. حالا نمیذاره که ما پدرمون رو دفن کنیم. پسر تاجر پولی رو که پدرش بهش داده بود به اونا داد و بعد از اینکه اونا مردشون رو به خاک سپردند پسر باز به راه خودش ادامه داد و رفت و رفت تا به یه دوراهی رسید چشمش به پیرمردی افتاد که چوبی تو دستش بود و روی تخت سنگی نشسته بود پسر سلام کرد پیرمرد از پسر پرسید که کجا میره پسر گفت برای تجارت به شهرهای دیگه سفر میکنم. پیرمرد گفت منم با تو میام تا با هم تجارت کنیم پسر قبول کرد و با هم به راه افتادن و رفتن رفتن و رفتن تا شب شد به چشمه ای رسیدن پیرمرد گفت امشب و کنار همین چشمه میخوابیم هر دو از اس پیاده شدن و مشغول استراحت شدن نیمه های شب پسر خوابش برده بود اما پیرمرگ که بیدار بود از دور دو تا مشعل روشن دید که به طرف اونا می اومد وقتی که نزدیک تر شدن متوجه شد که اون تا مشعل روشن چشمایی اجده هاست که داره از چشم آب می نوشه وقتی آب خوردن اجده تموم شد برگشت که بره پیرمرد با خودش فکر کرد که هر کجا که اژدها باشه حتما خمره های طلا هم اونجا وجود داره به خاطر همین دنبال ها راه افتاد ها داخل غاری رفت پیرمردم پشت سر اون وارد شد چشمش به هفت تا خمره ای طلا افتاد که داخل غار وجود داشت و اژدها روی اونها نشسته بود وقتی اژدها پیرمرد دید به طرفش حمله کرد اما پیرمرد با چوب دستیش چند ضربه به اژدها زد و اونو کشت پیرمرد از غار بیرون اومد و برای اینکه از خمره های طلا حفاظت کنه یه تخت سنگی رو جلوی در غار گذاشت و در غار رو بست و بعد به همون جایی که پسر تاجر خوابیده بود برگشت پسر هنوز خواب بود پیرمرد اونو بیدار کرد و بعد از اینکه یه مقدار نون و آبی خوردن دوباره راه افتادند اونا تمام روز راه رفتند تا به یه خرابه ای رسیدن. رسیدند پیرمرد گفت امشب و همینجا میخوابیم و پسرم قبول کرد نیمه های شب پیرمرد نوری دید که از دور میادش بلند شد که بره ببینه چیه رفت و رفت سر چاهی رسید خوب که نگاه کرد دید نور از ته چاه بیرون میاد پیرمرد از چاه پایین رفت و دید که مقدار زیادی طلا اونجا هستش و دو تا دیو مشغول بازی کردن هستند وقتی دیوا پیرمرد رو دیدن بهش حمله کردند. اما پیرمرد با چوب دستیش به سر دیوا زد و اونا رو کشت بعدم از چاه بالا اومد و سر چاه رو بست و برگشت پیش پسر و اون رو از خواب بیدار کرد. اونا دوباره راه افتادن و رفتن و رفتن تا به شهری رسیدن. اونجا یک کاروان سرایی بود. اونا به کاروان رفتن و وسایلشون رو در اتاق گذاشتن که غذایی بخورن و استراحتی کنن. پسر از پیرمرد خواست که با همدیگه به داخل شهر برن. اما پیرمرد گفت که من خیلی خستم تو برو پسر به بازار شهر رفت و دید که قیمت اجناس اونجا خیلی مناسبه شب که شد برگشت پیرمرد پرسید خب بازار چطور بود پسر گفت قیمت اجناس خیلی مناسب بود ولی ما پول نداریم چیزی بخریم روز بعد پسر تاجر به قصد بازار به راه افتاد و به کوچه رسید دختری با دو تا نوکرش از کوچه داشت رد می شد. پسر که سر کوچه ایستاده بود تا چشمش به دختر افتاد یه دل نصد دل عاشق اون شد. پسر از مردی که اونجا رد می پرسید اینا کی بودن؟ مرد گفت این دختر پادشاه که همراه دو تا از نوکراش به همون میره. پسر تاجر غصهدار شد و با خودش فکر کرد که، ان که پول ندارم عاشق شدنم چیه شب که شد پسر به کاروان سرا برگشت و یه گوشه ای نشست پیرمرد پرسید چه خبر جنسا چطور بود پسر گفت قیمتا خوب بود ولی ما نمیتونیم بخریم پسر تاجر از فردا نه ناهار میخورد و نه شام تا اینکه مریض شد پیرمرد بهش گفت هر چی که پیش اومده به من بگو شاید راه علاجی چاره‌ای چیزی پیدا کنم پسر گفت هیچی نشده. فقط من آشق دختر پادشاه شدم پیرمرد گفت خب این قصه خوردن نداره زودتر میگفتی تا به خواستگاری دختر پادشاه برم صبح روز بعد پیرمرد به راه افتاد و پرسون پرسون قصر پادشاه پیدا کرد وقتی وارد تالار قصر شد دید که همه وزیرا حاضر هستند پیرمردم یه گوشه نشست پادشان وارد شد و یه نگاهی به پیرمرد انداخت اما چیزی نگفت شب که شد پیرمرد از قصر بیرون آمد و به کاروان سرا برگشت پسر بهش گفت کجا رفته بودی گفت رفتم خواستگاری ولی کسی از من چیزی نپرسید فردا صبح دوباره پیرمرد به قصر رفت و دید که امروز هم مثل دیروز همه وزیران نشستن. پیرمرد به پادشاه سلام کرد و همون جایی نشست که روز قبلم نشسته بود. چند ساعتی از روز گذشت. پادشاهی نگاهی به پیرمرد کرد و به وزیر خودش گفت این پیرمرد دو روزه که به اینجا میاد ازش بپرسید که چه کار داره. پیرمرد در جواب اونها گفت من با خود پادشاه کار دارم. پادشاه که حرف پیرمردو شنید پرسید با من چه کار داری؟ پیرمرد گفت من یه پسری دارم که عاشق دختر شما شده. حالا هم برای خواستگاری اومدم اینجا. و زیرا وقتی این حرف پیرمردو شنیدن خندهشون گرفت. پادشاه گفت ما حرفی نداریم ولی دخترم شرط و شروطهای زیادی داره. پیرمرد پرسید چه شرطی؟ پادشاه گفت همین حوض کنار قصر باید سه مرتبه از طلا و جواهر پر خالی بشه. پیرمرد قبول کرد و گفت من یه خواهشی از شما دارم. فردا یک قطار شطور و دو تا ساربون به من بدین. پادشاه قبول کرد که این کار رو انجام بده. پیرمرد به کارون سرا برگشت و به پسر گفت که من پیش پادشاه رفتم و از اون دخترش رو برای تو خاصه کاری کردم. پسر خندید و گفت از کجا این همه طلا و جواهر بیاریم؟ پیرمرد گفت خسه نخور من سر قولم هستم. صبح که شد پیرمرد به پسر گفت بلند شو تا به قصر پادشاه بریم. وقتی وارد قصر شدم، پادشاه نگاهی به جوون کرد و دید که پسری زیبا و برازنده است. پیرمرد گفتش که دستور بدین تا شطور‌ها رو بیارن. یه قطار شطور جلوی در قصر پادشاه حاضر شد. اونا حرکت کردند. پسر سوار شطور شد ولی پیرمرد پیاده را افتاد و ساربونها رو راهنمایی کرد تا اینکه به سر چاه رسیدند. پیرمرد به ساربن‌ها گفت شطور‌ها رو به و این خاکها رو کنار بزنید. بعد از کنار زدن خاک ها به سنگی برخوردن و چند نفری اونو برداشتند. برداشتن پیرمرد به پسر گفت شما بالا بیستین من با یه نفر پایین میرم اون کیسه ها رو پر از طلا میکردن و میفرستادن بالا وقتی پسر طلا ها رو دید خیلی تعجب کرد همه اون کیسه ها رو پشت شتورها بار کردن ولی خب هنوز مقدار زیادی هم طلا تو ته چاه مونده بود اونا به طرف قصر پادشاه را افتادند قافله شوتورا که نزدیک شهر رسید به پادشاه خبر دادند پادشاه چند نفر رو به استقبال اونا فرستاد شوتورا رو خوابوندن و حوض رو سه مرتبه از طلا و جواهر پر و خالی کردند پادشاه و همه این مردم چرف‌هاشون به این همه طلا خیره شده بود بخصوص که یک بار شطور هم اضافه اومده بود پیرمرد و پسر تاجر وارد قصر شدن و در کنار پادشاه نشستند. پادشاه رو به پسر کرد و گفت شما شرط رو بردین حالا دخترم مال تو بعد به وزیرش دستور داد که در شهر اعلام کنن که هفت شبانه روز عروسی دختر پادشاهه و از همه مردم هم تو قصر پذیرایی میشه. چند روز از عروسی پسر تاجر و دختر پادشاه گذشته بود که پسر به همسرش گفت که ما باید به شهر خودمون برگردیم. پدرم آرزوی عروسی منو داشته و میخواد برای ما جشن عروسی بگیره. پادشاه گفت اگه همینجا بمونی پادشاهی من بعد از من عزان تو میشه. به قبول نکرد. و پادشاهم اجازه داد که اونا برن. پیرمرد هم با اونها همراه شد. اونا به راه افتادن و رفتن. رفتن تا به سر چاه رسیدن. شب رو اونجا چادر زدن و همونجا موندن. پیرمرد دستور داد تا سر چاه رو باز کنن و طلا جواهرات رو بردارن. بعد هم دوباره راه افتادن تا رسیدن به در قار. پیرمرد دوباره دستور داد که در قار رو باز کنند. هفت تا خمره طلا در اونجا بود. اونا رو برداشتن و رفتن و رفتن تا به همون دوراهی رسیدن که پسر و پیرمرد در اونجا با هم آشنا شده بودند. پیرمرد به پسر تاجر گفت یادت هست که من و تو تو اینجا با هم قرار گذاشتیم که هرچی داریم با هم تقسیم کنیم؟ پسر قبول کرد و تلا جواهرات رو با هم تقسیم کردن بعد نوبت رسید به دختر پادشاه. پیرمرد گفت چون من و تو باید هرچی رو که داریم با هم تقسیم کنیم این دختر رو هم با هم, با هم دیگه تقسیم کنیم پسر گفت نمیشه این کار کنیم پیرمرد گفت چرا؟ ما باید این کار رو انجام بدیم، قرارداد قرار داده. دختر پادشا که این حرفها رو شنید قش کرد. اونا دختر رو با زحمت زیاد به هوش بردن، اما هرچه به پیرمرد می گفتن که این کار درست نیست پیرمرد قبول نمیکرد و می گفت حتما باید تقسیم کنیم. بالاخره پیرمرد شمشیرش رو بالای سر دختر برد. اما اون رو؟ پایین آورد و کنار دست خودش گذاشت و پسر تاجر صدا زد و گفت همه این طلا جواهرات و دختر مال تو من همون مرده‌ای هستم که تو صد تومن دادی تا بتونن منو خاک کنن حالا بگو تو از من راضی هستی یا نه پسر گفت بله راضی هستم پیرمرد در یه چشم به هم زدن غیب شد پسر و دختر پادشاه و همراهاشون راه افتادن وقتی که نزدیک شهر خودشون رسیدن پسر ای برای پدرش نوشت و بهش خبر داد که با دختر پادشاه ازدواج کرده و حالا هم داره به شهر خودشون برمیگرده. تاجر خیلی خوشحال شد و چند نفر رو به استقبال اونا فرستاد بعدم براشون جشن عروسی گرفت و همگی در کنار هم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 سفر شاهزادهها و شاهان با اصف تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای های دیو و غول و پری رشادت های, های قصهها همه, همه, همه. همه و همه و همه در کانال تریکرامی هزار افسان داستان های ای صوتی ادساین مهران دوستی